به نام خدا موضوع این صحبت آدم وهوا هست آدم و هوا در کل فرهنگ بشری در کل تجربه روزمره زندگی بشر در داستان خلقت انسان در کتب مقدس در تورات، انجیل، در قرآن به حال اهمیت مسئله واضح است در باره اهمیت شناخت معنای آدم و حوایی در تاریخ اهمیتش انقدر حسی، داغی و تجربی هست که بیشتر از این نیاز به است و در این حاضر این مسئله بسیار پیش پا افتاده و سهل و ممتنه به نظر می رسد که لابد امروزه فراموش شده ترین مسائل بشره، این پیش پا افتاده ترین و مهمترین و محوری ترین روح و روان و و همفادات بشری به نظر می رسد که در حال فراموشی است هل تاریخ ادیان میدونیم که کل داستان مذهب با آدم هوا شروع میشه در قرآن کریم هم این اهمیت واضح شده هر که سخن بر سر آدم هوا ها خداوند مرتب مومنان را متذکر میشه که بیاد بیارید این واقعه را و تفکر کنید عبرت بگیرید تا هدایت بشه قسم ما فقط یک بحث محرفتی هست که زیاد هم میل نداریم که نقل قول کنیم از این کتاب و اون کتاب این نقل قول نیازی نیست در فرهنگ آمه مردم اینها به صورت داستان و قصه و اینها همه از بر هستن این هم همطور که ما از کتب مقدس همچنین این از قرآن کریم ما درف میکنیم اینه که هوا از سینه آدم از بطن چپ او که در واقع قلب اوست خلق شد. به نظر که هوا مخلوق آدم باشه. البته به اراده فروردگار. همونطور که آدم رو خداوند خود با دستانش آفرید بر حال هوا به نظر که یک که مخلوق ثانویه باشه. و حسب زمان بعد از آدم خلق شده. ولی به لحاظ معنا به نظر میرسه که یک موجود ثانوی نیست بلکه واقعا برعکسه. چرا اگر آدم مرد همان دلشه، همان احساساتشه، اگر آن گوهرهی که اراده و احساس بشر نامیده میشه در سینه در قلبشه هوا از آنجا درآمده و تجسم پیدا کرده. هوا حتی به لغت هم در زبان عبری و همچنین عربی از واژه حی و حیات و زندگی هست به نظر می رسد که آن گوهره حیات آدم از سیناش بیرون آمده و جمال پیدا کرده و شده هوا شده زن درستم به همین داریده که یک مرد احساس زندگی و زنده بودن و اون انرژی حیاتی خودش رو همواره در رابطه با یک زن جستجو میکنه و احساس و درک میکنه به بیان دیگر آدم حیات و هستی خودش رو در یک هوایی میبینه که روح خودش متجلی شده تجسم و تعین پیدا کرده در وجود یک زن اون در یک دورانی مادر بد همسری یک معنای دیگر هم وجود داره که از لحاظ سر واژه و علم هرمونتیک یا علم تحویل بسیار جالب توجه است و واقعا مثل یک سر می مونه. و اون واژه اروس در فرهنگ یونانی هست که به نظر من این همون عروس در زبان فارسی و در زبان پهلوی هست حالا این آیا همونه که اومده یا نه خیلی بحث مهمی از این دیدگاه که ما صحبت نیست ولی به نظر میسته که این همونه برای که معناش ضعیقا همونه عروس در فلسفه و لبانجناسی اروپا به معنای اون عنصر حیاتی و خصوص در جلوی شهوت جنسی و عشق جنسی و اون عشقی که آدم به هوا پیدا میکنه متجلی شده و در کل فرهنگ اروپا این واژه جا افتاده و اینجوری معنی میشه قدرت جنسی عشق جنسی و شهوت جنسی که آدم در هوا جستجو میکنه این عروس که در واقع همون عروس هست که محرک قوای حیاتی است که در یکی از سطوحش وصلت شهوت جنسی آشکار میشه به لحاظ احساس و صورت عشق خودشون نشون میده و این عنصر محرک تمام فعل جسمانی و روحی و روانی و مغزی و بدنی مرد هست یعنی این اروس که اون حواس که همون عروس هست در حقیقت میشه گفت مرد رو به حرکت میاندازه در فرهنگ یونان باستان کتابی هست تعتی عنوان تبارشناسی خدایان اثر یک شاعر بردازه فکر میکنم قرن هفتم و هشتم قبل از میلاد مسیح به نام هسیود ایشون در اونجا برای اولین بار از این واژه طور تخصصی استفاده کرده از واژه اروس به این معنا که از زمانی که این گوهر این منصور بارید عالم هستی شد، عالم هستی از قدم روی اختشاش، تشنج، سردرگمی و پراکندگی به قانون و قاعده و نظم در آمد و هدفمند شد. اینو در استورشناسی منان باستان یک بحث بسیار مفصلی هستش. در این حال این عروض از دیدگاه هسیوت، مظهر بارورسازی طبیعت و جان هست در کل عالم هستی به طور دقیق در, در انسان اون انصر بارورسازی و حیات و است که جهان هستی را از اختشاش از قلمرو روی کاؤس به قول روپایی خارج کرد و نظم بخشید و زمین و آسمان را با همدیگر متحد ساخت یعنی ما دو معنا را با همدیگر متحد ساخت قانونمند ساخت به همین معنا در فلسفه افلاطون هم وارد شده که چند بعد از حسیات هست افلاطون هم اروث رو آن قدرت محرک موجود در ذات موجودات عالم میدونه که کل موجودات عالم رو سوی آن های جهانی همون مسل افلاطون به سمت اون ایدعالهایی سوق میده که مقصود خلقت بوده از دیدگاه افلاتون در این حال این عنصر شهبانی و عشق جنسی وجود داره که افلاتون معتقده که این جنبه شهبانی پایین‌ترین و سطحی ترین جنبه بروز اروس در انسان هست که به صورت پرستش عشق جنسی و زیبایی های محرک جنسی خودشون شده رو حالا مختصر الله تاریخی معنا رو در تمدن غرب بخوایم پیگیری کنیم به قرن جدید میرسیم به قرن بیستم میرسیم در مکتب روانکاوی فروید و کلا آین روانکاوی فروید و پیروانش نیز اروس یک اهمیت کلیدی داره و شاکلید کلید بحث زمیر گاز که فروید اون رو لیبیدو معرفی میکنه که گوهره لیبیدو به عنوان انرژی حیاتی همون همان اروسباس که مهوریترین عامل در انسان هست که محرک اندیشه احساس و تمام فیل و انسان است نکته دیگری هم که در فرهنگ اروپایی و اندیشه مسیحی مدرن اروپا وجود داره اینه که برخی از فلاسفه و عرفای مسیحی در مقابل اروس یک انصار دیگری رو معرفی میکنند و اون را آگاپه می نامن. آگاپه از بطن اروس درآمده و نیروی است در بطن اروس که برای علیه اروس فعالیت میکنه و اون به معنای بخشش و ایثار و از خودگزشتگیه در حالی که اروس اون انرژی حیاتی هست که میل به تملک و تصاحب داره در صورتی که آگافه به معنای ریاضت از خودگذشتگی و ایثاره که در انصر فرهنگ مسیحی حضوری فعال داره و البته در تمام مذاهب این آگافه وجود داره و اون همون تقواست یعنی اراده انسان بر علیه قدرت اروتیک نفس و هم که اون انرژی اروتیک میل به تملک داره که از مرکزی شمان شهبت، انما اقسام اشخاص همونطور اشخه جنسی هم اشخه به تملک معشوقه تملک کل جهان رو شامل میشه آگاه در نقطه مقابلش وجود داره در دین اسلام هست در مکتب بوداییزم شدید ترش هست نبرد بر علیه ایروتیک ولی باز بدونیم که این آگاپه که در واقع همون تقوا هست که به اسم عشق ایساری هم معروفه در حالی که اروس عشق تملکی است، این عشق ایساری است در واقع همون تقواه است که از بطن اروس در اومده و یک رابطه کاملا دیالکتیکی با هم دیگه داره خب حالا این مسئله رو برمیگذاریم به مفاهیم و اسطوره های مذاهب بزرگ در کل تاریخ بشر که میبین این اهمیت و این قدمت بسیار بیشتر از تمدن قرب و فلسفه و اسطورشناسی غرب مثلا نگاه کنید در خود مسیحیت نهایتا در همه فرقه های بزرگ مسیحی و آنجا که مسیحیت نامیده میشه که به امروزم کاملا حاکم هست در پیروگان دین مسیح حالا با حقانیت یا نادرستیش کاری نداریم به عنوان واقعیتی که به مسیحیت پدید اومده و مسیحیت نامیده میشه تمام ارزش های مقدس در عالم هستی در جهان مسیحی به حضرت مریم علیه السلام مجر میشه خب حالا همین معنا رو و ارزش این مفاهیمی که صحبت شد رو میتونیم در کل تاریخ مذاهی بزرگ جستجو کنیم و به عینه ببینیم مثلا در کل فرقه های بزرگ مسیحی و در کل جریانی که محسوم به مسیحیت هست ما میبینیم که همه ارزش های قدسی در مذهب به مریم مقدس یا به مادر مادر مقدس ختم میشه در واقع میشه گفت تجلی پروردگار در عالم خاک و در عالم بشری کمال مطلقش حضرت مریم فرض شده که مقامش در کل تفکرات مسیحی از مقام حضرت مسیح هم بالاتره اصلا گویا حضرت مسیح در است که به اسمت و قداست و عظمت وجودی حضرت مریم عیسی به عنوان آن حیات و هستی و آن جان قدسی خب این رو مثلا فارسیون در ادبیات کلاسیک مسیحیت مثل فارسیون کومیدی الهی دانته هم میبینیم که در اونجا حضرت مریم قایت و مقصود آدم هستی است یعنی یک زن بعد در جزیاتش بسیار مفصل ما فقط میخوام اشاراتی به این حقیقت داشته باشیم این همین مسئله ما در اسلام هم میبینیم خصوص در تشیعی این قضیه بسیار شدیدتر و واضح مفهوم میشه دریای ادبیات و احادیث وجود داره و میبینیم که طبق آن حدیث قدسی یا مسیح به حدیث میراج هم ما میبینیم که بنارد از خداوند نقل شده که خداوند کل عالم و آدم را آفرید برای اینکه نهایتا محمد رسول الله رو بی و او را نیز آفرید برای اینکه علی ولی الله را بیافرینه و علی را هم آفرید برای اینکه فاطمه رو خلق کرده باشید این حدیث رو همه ما میدونیم که اگر قرار نبود خداوند حضرت فاطمه رو خلق کنه اصولا هیچ چیزی خلق نمیکرد بنابراین در اسلام و مخصوصا تشیع هم می‌بینیم که حضرت فاطمه قایت مطلق خلقت انسان و جان انسانی و روح انسان قلمداز شده مثلا فرضکن در عرفان اسلامی که گوهره جاودان دین اسلام هست هم میبینیم که آن یار قدسی و مطلق همه عرفای ما آنگاه که به بیان میاد میبینیم که یک زن یک زن جوان قصفه مطلق زیبایی و قداست و برکت و رحمت و محبت البته همراه با قهاریت و غیرت و معنس اینجا ما میخوایم صورت دیگری از مفهوم اروس رو صحبت کن گرچه این اروسی که در مذاهب هست به نظر میسته که 180 درجه برعکس آن است که در شناسی اینان باستان بوده منظر میسته که این اروس همون صورت آگاپست ولی همون مخصوله یا مطمئن حتی در دین زرتشت ما داریم که در عبستا مخصوصا در در گاتها داریم که نهایتاً احورمزده زرتشت رو عمر کرد تا زینفست دیگه از الههی که اسمش آناهید یا آناهیتا یا ناهید هست اطاعت کنه که یک الهه موننسه ببین در دین زردش هم در کمالش چنین واقعی رخ داره باز شاهد این فیلم مثلا در مذاهب هندو که نزدیک بیش از سه هزار شاید حدود چار هزار تا خدایان و الهه ها وجود دارند خدای همه خدایان کسیست به نام کریشنا، کرشنا تمام خدایان رو تحت فرمان داره و او یک خدای معنسه یک زن جوان و است. که کسی را به نام آرژونا که یک مرد هست که مردی مسلح هست در خدمت اوست و اراده او را به آدم هستی و به بشریت الغار میکنه. و از این لحاظ می بینیم که شبایت عجیبی وجود داره بین شخصیت حضرت علی علیه السلام در اسلام و جهان تشیع نسبت به پروردگارش یک پهلوان عارف و عاشق و کمربسته امر فروردگار که از آن یار عرفانی که اطاعت میکنه در ارفان می میبینه که آن یار معنسه یک عرس یک عروسی که بر تخت عالم هستی جلوس کرده این عروس یک هم خود عرش هست که در زبان پلوی عرس بوده عروس هم یعنی بر عرش یا بر عرز نشسته اون معانی میبینیم چقدر شبیهه در همه این مذاهب خوب خب میبینیم که از یه لاز کاملا نسبت به اون تحریفی که در دستور شناسی یونان شد با همه شباهاتهاش درست ضدشه. بنظر به نظر که این یار عرفانی، این عروس و این عروس که مظهر کمال قداست و علوهیت هست از طریق آگاپه یعنی تغوا قدید میاد یعنی انسانی که برانه قدرت اروتیک که خودش نبرد میکنه تغوا پیش میکنه به جمال قدسی و حقیقی اروس یعنی جان و عشق میرسه برای همینه در تمام عرفانهای جهان کامل ترین معنا محبت و عشق در تمام عرفانها همینطوره یعنی انسان از طریق مب... طبعیت از قواه اروتیک و شهوانی خودش هرگز به اون جمال مطلق عشق نخواهد رسید. بلکه از طریق تقوا و پرهیز پیشگردن نسبت به این قواه اروتیک نفس خودش که میرسه. همونطور که به مثال از حضرت علی علیه السلام سؤال میکنم که شما چگونه خدا رو میبینید چون ایشون دعا میکرد که من خدا رو میبینم و هرچه نگاه میکنم دوست خدا نمیبینم اشون فرمودم که من از طریق مخالفت با نفس خودم به او رسیدم و با او دیدار کردم. هرچی که نفس من گفت من خلافش رو انجام دادم. من ضد خود عمل کردم و به خدا رسیدم. این همون آگابه همان همون تقوه است، همون ریاضته. این معنای دیازکتیکی خوب قابل تعملی در فلسفه و حکمت هیچ معنایی نیست که دارای ذاتی متناقض یا به قول قربیاد یا دیک نباشه به قول خود حضر علیه علی سلام هر حقیقتی واسطه مرتزادش شناخته و یافته میشه حالا اینم هم همینطور. خب حالا هم به مقدار هم بفردازیم به خود آدم که در نقطه مقابل هوا یا اروس یا عروس قرار داره خود سر واژه و علم هرمونتیک این واژه یا تعویل این واژه بینهایت مهمه اهمیت این علم امروزه یک بار دیگه خودش رو بهتر نشون میده آدم رو به بهلهاظ سر واجه و تعویل خود این لفظ بسیاری مترادف با عدم گرفتن رو یا کسی که محکوم به عدم شده آدم رو خداوند خلق کرد و از هستی خودش به او بخشید و گویی دو مرتبه او را محکوم به عدم کرد تا در این عدم یک بار دیگر خود هستی و حیات خود رو بجوید، بکاود و بیابد این رو در فرهنگ اسلامی و در خود قرآن کریم مترادف با معنای خلقت جدید می, می, می نامد گویا آن خلقت قدیم بود این خلقت جدیده که انسان به واسطه معرفت خودش یک بار دیگر آن رو کشف میکنه. در قرآن کریم هم آمده که خداوند انسان رو در عالی ترین مقامات و وضعیت ها خلق کرد در اعلال ایلین خلق کرد و سپس او را در اصل و پرتاب کرد و اینک او باید ترین اصفل و یک بار دیگر اون هستی اعلال ایلینی خودش رو به دست بیاره کل راه دین و معرفت برای همین رسیدن دوباره به هستی قدیم هست به بیان دیگر اگر آدم همان روحشه، همان دلشه، همان احساسشه، همان احساس حیات و جان هست خب هوا یا این اروس از قلبش برو نفینده شد بنابراین او دوچار قهتی وجود شد قحطی جان شد یعنی انگار متهم و محکوم به ادم و مرگ و فنا شد از همینجا بهتر میشه نیاز و عتش ذاتی آدم رو به هوا یعنی مرد رو به زن درک کرد اینکه چرا مرد زن را پرستد و ذاتا به او میگراید و گاه او رو همچون خدا ستایش میکنه خب این مفهوم واضحه در حقیقت مثل اینکه هوا یا این هروس انگار تجسم جان و روح و حیات آدم بود که ازش برون افکنده شد و انسان در درون خودش دیگر هیچ احساس حیاتی هستی نداره حیات هستی خودش رو و جان خودش رو در بیرون از خودش میبینه در هوا در واقع میبینه که خودش خودش نیست بلکه او خودشه این او را خودش میابه هوا یا اروس هم همینطوره او گویین که خانه وجود رو ترک کرده همین تن آدم گویین که خانه وجود هوا بوده حالا از خانه برون افکنده شده در قربت افتاده هوا هم میخواد برگرد دو مرتبه به خانه خودش که سینه و دل آدمه برای همین رابطه آدم هوا تماما رابطه احساسی و قلبی است ذهنی نیست در واقع جان که جنسیت از همون جان هست و در خود قرآن کریم هم آمده است که خداوند انسان را از جن آفرید یعنی انسان اول جن بود خب در اینجا می‌بینیم که جان، جن و جنسیت یک منشه داره، یک معنا داره همچنین جنون همچنین جنون خب به اقلانی این واضح شده که رابطه بین آدم و حوا و کلا رابطه عاشقانه. تماما رابطه است، خلاف عقل است یا لاغل است. این واضح شده برای همین عشق رو همواره در نقطه مقابل عقل قرار میدن ببین چرا برای که عشق باستاب جانه یعنی باستاب جن فیضمفادات جنمی داره یعنی جنونی داره حتی خود واژه جنایت نیز باز از جانه و ما میدانیم که تمام جنایت های بشری برخواسته از فیلانفالات جانی جنسی و لذا جنونی اوست که شدیدترین این جنون ها و جنایت ها نیز برخواسته از قلمرو عشق هست و هم میدارید که ما میبینیم جنون و جنایتی هست به پس پردش بریم میبینیم برخواسته از عشق بوده عشق اروتیک، عشق به اروس ما این رو به واضح به وضوح ما میبینیم به مثل در درون زندان ها که بریم پیش محکومین ادام که بریم در نزد تباه شدگان و تباه و معتادان ساگف شده که بریم از هر کس برسیم که آقا چه شد کمچی شدی بقیل معروف میگه که پدر عشق، بسوزد عشق من رو به اینجا این یه واقعیت پس رابطه بین آدم هفه آمد شد که از چه است در سر خلقت با استند رو دور کرد در خلقت آدم و حوا رابطه آدم و هوا. رابطه ظرف و مظروف است رابطه تن و روح است عشق آدم به حوا عشق آدم در واقع به جان و دل و روح خودشه در واقع انسان عاشق خودش میشه در هوا. آدم عاشق خودشه این از لواط جنسی هم ثابت شده که عاشق در واقع عاشق خودشه منتهی در یک حوا برای هم عشق اشد خود برستی است این صورت دیگری از این حقیقت بیورت هستش حالا این بحث رو یه مقدار من مستر و تر کنیم و برسونیم به زندگی محسوس بشر امروز و خصوص ما میبینیم که یک آدم هوای سنتی داریم و یک آدم هوای مدرن داریم قبل از این نکته به یک مسئله دیگر که واقعا قابل تعمله، اینها همه تره سواله، پاسخ نیست. سوال امروز سوال مهمتر از پاسخ. برای اینکه همه در هر موردی دریایی از جواب در جیب دارند. ولی دریایی از این جوابها هم به هیچ کدام از مسائل زندگی انسان واقعا پاسخی نمیده. واقعا ما امروز در قهطی سؤال هستیم. مفهومش اینه که ما صورت مسئله رو فراموش کردیم. منظور از این صحبت ها هم تمام به یاداوری دگرباره صورت مسئله است صورت مسئل. آدم و این واژه در نقطه مقابل عروس یا ارسکو گفتیم میتونیم مترده در داماد بیا بین. حتی در صورت ظاهر این واژه هم ما میبینیم که داماد خود ریشه در واژه آدم داره این داماد مفهومش چیست؟ این لغت ایرانی است آدم این لغت عربی است در این حال در زبان فارسی هم بوده در یونانی هم مشابهش وجود داره خود همین نشون میده که این واجه تا چدی جزء ارکان مشترک زبان و فرهنگ بشر بوده هنوز هم باقی داماد را از یک لازگویا به نظر میریزه آن مردی است که به دام افتاده است دام آباده، به دام آدم افتاده است مواجه با قحطی وجود شده است قحطی جان شده است جالبه در فرهنگ لاتین نیز ما واجهی داریم که تلفظش عین داماده و اون واجهی هستش که موزم در فرهنگ انگلیسی زبان روزمره به بکار میره و اون لغت دم, دم، که در لغت اسطلاح معروف قادمد ما این رو میشناسیم قدم یعنی لنتی خدا سی که خدا رو لنت کرد لنت شده خدا از خدا پر شده به دور افتاده خدا به عنوان مذهر و قانون و مبدعی حیات و جان هستی پس کسی که از خدا دور افتاده ترس شده یعنی در قحطی جان و وجود افتاده داماد و دمت چقدر در همون لفظ شبیه همه الازم معنا و متواه هم شبیه همه اینها نیست سر نخواه تعویلی و علم هرمونتیکی هست که بسیار به حقایق حقائق کمک میرسونه در اول صحباتمون متذکر شدیم که در استورشناسی اینان باستان و در اثر تباشناسی خدایان از هسیوت در اونجا اروس یکی از مفاهیمش قدرت قانونبندی بود قانونمند کردن هدفمند کردن جهان. خب ما میدونیم که واقعا هر مردی تا ازدواج نکنه تا با یک عروسی رو بودی نشه و عروس نیابه مدید اصلاعوالی بی اهدو و وفا اللهو و سرگردان و در به در و بی هدف و مخصود و بی آرمان و بی ایمان در واقع عروس داماد یا دمت رو قانونمند میکنه به بند می‌کشه، به اهد و وفا میکشونه. به نظم و ترتیب میکشونه این واقعه است برای همین وقتی گفته میشه که فلانی فلان جوان خیلی لاوالیست بیقیل و بنده میگن آقا برای زن بگیرید قانونمند میشه این واقعیت. این واقعیت. دیشه در اعماق تاریخ بشر داره ما میدانیم اموزه علم جامعه شناسی و در شناسی اجتماعی هم این رو نشون داده که آنجا که تمدن و مدنیت نامیده میشه که همان قانونمندی هست در جنبه های علمی، شرعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی تماماً برخواسته از تشکیل خانواده و ازدواج. یعنی هم نشینی دمت و اروستند اروس یا عروس آمد در اینجاست که اولین بار عهد وفا یعنی قانون نطفهاش بسته میشه کل بشریت و تاریخ تمدن تا آماغ و حکومتها یعنی قوانین ریشه در رابطه بین اروس دمد یا عروس داماد داره اینجاست جامعه شناسان در 18 امروزه به بوضوع نشون دادن امروزه جزء علف علم جامعه شناسیست که هسته مرکزی تمدن و بشریت بلکسته مرکزی پیدایش مذهب و شریعتها ها رابطه آدم هوا و مسئله ازدواج بوده. قانون از اینجا پدید اومده لذا تمدن نیز از همینجا برخواست این اهمیت در مذاهی بخصوص در دین مبین اسلام واضحه ما میدونیم که پیامبر اسلام صلی الله علیه آله مکرران می‌فرمودند که ازدواج سنت من است یعنی سنت من یعنی سنت نبوته. سنت کمال نبوته این سنت باز جزء دین میشه وگرنه قبل از پیامبر اسلام هم بشر ازدواج میکرد در اینجا اهمیتی ویژه ازدواج عنوان منشاء قانون و قاعد مندی و عهد و وفا اهمیتش در دین واضی میشه و ما میدونیم که در صدر اسلام تا چتی پیامبر اسلام تلاش میکردن که مؤمنان چه سریعتر ازدواج کنند میگفتن کسی که ازدواج نکرده هنوز دین و ایمانش بنیاد و, و ریشه‌ای نداره یعنی انسان تازمونی که ازواج نکرده به خود ایمان خودش هم متحد نیست یعنی قانون من نیست یعنی لاوالیست یعنی بیوفاست خود این ازدواج همان همون است که ما گفتیم در غرب آگاپه منوفه یعنی عشق, عشق ایساری همون میتونیم زنان شوهر به میزانی که در رفت با همدیگه گذشت میکنند و ایسار میکنند میتونن با همدیگه زندگی کنند به میزانی که هر کسی میخواد رو ببلعه و تصرف کنه و تملک داشته باشه و سلطه داشته باشه اون زندگی اون دانشگی محکوم به تباهی و فروپاشی است خب پس ما ببینیم که ازدواج هم بر اساس عشق ایثاری پدید اومده که از قلب عشق اروتیک خودشون که همان تقواس میزان استقامت ازدواج میزان رعایت تقواست رعایت تقوا همون رعایت حق و حقوق و حقوقو رعایت وفاست در حقیقت این میزانی که از خود یعنی قوت روتیکش کاهش میده و بر آن میشه در واقع انسانیس لذا لا قاننمند لذا با وفا لذا متعهد به دین و ایمان و شرافت و همچنین متعهد به عقل خودشه به بیان دیگر میشه گفتش که انسان به واسطه قدرت عقل و خرط و حکمت هست که میتونه اروث رو قانونمند کنه و قانونمندی اروث رو کشف بکنه و به اون یار عذلی و جاودانه رو بکنه و به او برسه یعنی تقرب رو داشته باشه خب حالا به جنبی دیگری از مسئله که برسیم که مسائل مخصوصا امروز انسان در همه جای جهان هست مسئله است. این تنهایی رو ما میدونیم که اساسا وضعاتا موزلی مربوط به مرد یعنی آدم هست دمد احساس تنهایی در زن بیشتر یک نوع تقلیده واقعا تنهایی نیست یک جوان از فرط احساس تنهایی میره ازدواج میکنه تا از تنهایی در بیان تنهایی یعنی چه یعنی تن مرد احساس میکنه که تنه روح نداره انگار به روح برسه تنه دل نداره هم کسی که در او باشه نیست به یک عروس میرسه و میبینه که این همان است. ولی تجربه بشر نشون میده وقتی که ازدواج اتفاق افتاد اتفاقا چار سبایی که گذشت یعنی از آن عشق اروتیکی و شهوت که چار روزی گذشت اون آتش پروکش کرد به تازگی به مرد. آدم احساس میکنه که بیش از هر زمانی تازه تنها شده و بینه که تنهایی قبل از ازدواجش چقدر سطحی بود هنوز تنهایی بود که آرزو داشت که بتونه ازش نجات پیدا کنه ولی ازدواجش کرد تازه میفهمه که مواجه با یک تنهایی بی انتها و ابدی شده و بالای دیگر تازه قحطی وجود و جان رو هزاران بار شدیدتر و انیقتر درد و احساس میکنه و باید دیگر میبینه که این عروس همان است که بایستی باشد و نیست هست و نیست این دیالکتیک و تناقض هستی و نیستی که در حکمت هموار مطرح بوده من مستریم بیانش رو در رابطه با آدم هوا نشون میده هست و نیست چرا برای اینکه هوا در واقع بایستی بیاد در دل مرد تا به مرد هستی بخشه ولی میبینیم که نمی‌تونه بیاد در دل مرد حد در آغوشش میتواند بیاد و در دلش نمیتواند بیاد <تصفيق> به همین دلیل که تجربه تاریخی مرد در قدم روی ازدواج گام به گام این یاس و پوچی رو تجربه کرد و به این اجید رسید که بهتره که اصلا از ازدواج بگذره اگر میبینیم که تاریخ بشر گام به گام و به خصوص در عصر جدید به سوی فروباشی و نابودی تشکیل خانواده و ازدواج داره میرسه این آسده یک تجربه تاریخی است از طرفی می‌دونیم که تمدن هسته مرکزی و ذاتش از ازدواج و تشکیل خانواده و عهد و قانون خانواده برخواسته و حالا میبینیم که این هسته مرکزی در حال پوسیدگی و فروباشی است پس به این معناست که گویا ما به آخر عمر تمدن بر روی زمین داریم تمدن به مفهوم تمدن شرقی و غربی و اسلامی و مسیحی نیست. تمدن به مفهوم گرده همانی بشر. که مفهوم بسیار اصاسی تر از تمدن فرهنگ ها و مذاهبه. برای هنی ما می بینیم که این ازمهلاد و فروپاشی خانواده یک امری است که بر روی زمین در همه جا داره اتفاق می رفته. حال اگر این روزه پرچمدار این فروپاشی خانواده غربه این رو باستی مناش رو به طرف چرا غرب. فل مثل این آزادی برابری زن و مرد دموقراسی لیبرالیست خب هم نگاه کنیم بیانیم. بیانیم آزادی در مفهوم حریقی و عملی خودش یعنی آزادی زن و مرد از شر همدیگر این مفهوم واضحه برای همین لیبرالیزم در نگاه اقتصاد سیاسیش هم ما میبینیم که اساسش بر آزادی زن و مرد از هم بر نابودی خانواده این لیبرالیزم میتونه عمل کنه برای همینه که اساس عملی و همه جایی و ایدولوژیکی قضیه بازار آزاد و انسانی برخواسته از اینه که زن و مرد از شرل هم دیگه آزاد بشن و دیگر به هم دیگه و وفا و قانونی بین اینها باستی نباستی باشه بگر اینه بازار آزاد عملا بازار آزاد سکس و عشق اروتیک عشق اروتیک محس بدون حفاظت عقل و عقابه و دین و تقوا خوب یعنی وضعیتی به ما نشون میده که ما به عنوان یک انسان در چه خطر و ذره رو شرری هستیم و به کجا داریم میریم یعنی این نابودی تمدن فقط نیست نابودی بشریت این یکی از مفاهیم اساسی و ذاتی وضعی است که در فرهنگ اسلامی موسوم به آخر آخرالزمان است آخر زمان از پاشی خانواده آغاز میشه آخر از زمان یعنی آخر خانواده یعنی آخر رابطه زن و مرد از همینجا بهتر میشه فهمید که تنها راه نجات تمدن و بشریت بر روی زمین همان راه دین انبیاء بوده یعنی تقبا یعنی تقبا برای مرد به نوع برای زن به نوعیست زن اگر هوا اگر است که از باطن مرد به برون افتاده پس است در قربت افتاده بیخانه و بیحفاظه و در اینجا بهتر میشه فهمید چرا علف دین برای زن حجاب حیاست آه یعنی بسی خودش بپوشونه زیرا حفاظش از دست داده برون افکنده شده بایستی بپشونه خودش و مرد هم بایستی در رابطه زن تروا پیشه کنه خیشتنداری پیشه کنه گذشت پیش کنه و وظایفی را که دین خدا یعنی قوانین تقوا به او میاموزه اگر اینها رو پیش نکنه نمیتونه در رابطه با زن در رابطه با همسر به اون آرامش قلبی برسه و با او رابطه برقرار کنه و هستیدار بشه احساس حیات و هستی بکنه و بیان دیگر مرد میزانی که نسبت به زن تقوا پیش میکنه کنه یعنی پرهیز میکنه و اساس قوانین دین خدا میتونه به او برسه این هم یک مفهوم دیالکتیکی دیگریست یعنی میزانی که از او دور میشه و او رو نمیپرسته به او میرسه به میزانی که از قدرت سرسگرانه اروتیکی خودش کاهش میده و خشنداری پیشه میکنه به او میرسه به میزانی که از اراده به بل زن و تصاحب ورود زن و تبدیل زن به یک شیء سکسی سفر نظر میکنه میتونه ببونسه به, به میزانی که از اون دست میکشه در واقع به اون میرسه این مفهوم دیالکتیکی در ذات تقوا و تروب اله الوجود داره برای همین تروب این از دیکی به خدا تقوا یعنی پرکیز از خدا به میزانی که انسان میترسه و تقوا پیشه میکنه نسبت به خدا به اون نزدیک میشه این معنا در رابطه با زمرت هم قانون عملی خودش تحت عنوان شریعت ها به نمایش اینوبرین این معمای تاریخی و همجایی بشر که راز بقای بشر بر روی زمینه و راز تمدن بشره و منشای مذهب و فرهنگ و دانش و هنر و همه تجلیات مادی و معنی بشر بر روی زمین هست این معما با فرمول ابلهانه و فیزیولوژیکی برابری زن و مرد واضحه که حل نیست این احمقانه ترین و مکانیکی‌ترین و مادی ترین رای حل برای معنوی و روحانی ترین مشکل بشره برای همینه حاصل این برابرسازی ها جز جنون و جنایات هیچ چیزی نبوده و نخواهد بود و این برابرسازی همان بستر نابودی نسل و نوع بشر و روی زمینه چطور میشه با زن و مرد برابرند آیا آباحترش رو میشه برابر کرد؟ از این م ممکنه ما گفتیم زن زنمرد ظرف و مظروفند آیا ظرف ومظروف برابرند آیا خانه و کسی که در داخل خانه زندگی میکنه با هم برابرند این اصلا چه معنایی میتونه داشته باشه جز حماغت و جنون آیا تم و روح با هم برابرند آیا ظاهر باطن برابرند آیا عاشق و مشوق برابرند از همه مهمتر ما نشان دادیم که رابطه بین آدم و هوا رابطه بین وجود و عدم ها. آیا وجود و عدم برابرند آیا بود و نبود برابرند؟ آیا آنچه که هست و آنچه که نیست برابر است؟ پس این برابری احمقانه ترین و مالی راه ترین رای حل و است که بشر جلوی خودش گذاشته و کلی بشریت دارند دنبال این شعار مالی میرند و جهان و تاریخ را بسوی سوی خولیا و جنایت و نابودی میکشونند بدون شک نشان هاش به هر عاقلی واضحه عقل آن نیرویی هست که از تقوا و دین برمیخیزه و میتونه قوه اروتیک و اروس رو قانونمند و هدفمند کنه و سوار بر اون به آرمان خودش در جهان برسه بنابراین رایحل اتحاد زن و مرد دوستی بین زن و مرده دوستی هم آن فرمول مادی خوریایی عشق غیر متعهد که چیزی جز لاعوالیگری فرصت طلبی و تبهکاری و خیانت زن و مرد نسبت به هم دیگه نمیتونه باشه دوستی عشق غیر متعهد نیست دوستی تماما بر تعهد به قول رسول اکرم الاشق کلها آداب عشقی که بر عدب و آداب و قانون و تغوا باشه به دوستی و به اتحاد و به نجات بشر میرسه و این دوستی تنها راه نجات بشر بر روی زمینه به این دوستی باید امیدوار بود و جز این امیدی هم برای بشر وجود ندارد. و سلام.